خب، تسغیر و حرف و او الف در این درس میخواد به شما بیاموزد تصغیر کردن کلماتی را که حرف دومشون دو الا یا الف هست تسغیر و ما تسغیر کردن آنچه که دومین دو حرف آن حرف و حرف الا هست او الف یا الف هست بابون غارون عابون ببینید تصغیر باب شده بوید در حالی که ما ها یاد گرفتیم که ما کلمه رو بروزن فوئل میبریم ولی هیچ تغییری در حروفش نمیاریم آه؟ مثلا حسن میشه حسین فقط یک یای اضافی میکنیم ولی کاری به حروف اصلیش نداریم در حالی که باب علف تبدیل بهوا شده در متسقیر شده بویب اینجا میخواد یه نقطه شما رو یاد بده که آقا اگر حرفی منقلبه در اصل حرف دیگه بوده در تسقیر به چش برمیگرده؟ به اصلش و ما برای اینکه بدونیم این حرف اصلی بوده یا نه یا به فعلش برمیگردیم یا به مصدرش یا به جمع مکسرش مثلا باب جمع مکسرش ابوابه پس میدونیم که این علیف غاب بوده لذا در تسخیرش اومده چی شد؟ شد بویبه شد چی؟ غار هم اصلش بوده غور، از مسترش میدونیم چون فعل مزارش یه هست قسمش واقه پس در تسخیر شده غویر عاب هم که یه هست فعلش این الف پس بوده در کسقیل میشه او یایب متعدد شدید سروران قیمه اصلش شواب بوده در کسقیل میشه قویمه غیله قیله غویله میت مویته تون موت اصل بوده نه بله اموت یا موتو پس میبینیم که حرف L اگر باشه اسمی بیایم تصغیرش کنیم به چی برمیگرده در تصغیر؟ به اصلش. اصلش. اصلش مثلا موسر موقن موس اینها اصلشون یا بوده یسر یقینه یعیسه اصلشون یا بوده مویسر مویقن مؤئذ این اسم تصغیرشونه یعنی به اطل... ال... امثله گروه االف به اصلش برگردید یا در امثله گروه با در اسم به اصلش برگردید واو هم در امثله گروه جیم به اصلش برگردید اما بیایید امثله گروه دال و ها و واب. اینجا همشون الف در این سه گروه همشون الف مثلا آكلا آمنه آمره فاضل قائم باق ساج صاب فام اینا همشون چی هستند الف ببینید الیف هر الیف، الیفی باشه خو دقت داشته باشید اگر الیف منقلب از حمزه باشه الیف منقلب است چی باشه مثلا اصل اکلا اکلا بوده ما اینو در محموزات خوندیم که دو تا حمزه ایجا باشن ما قبل اولی فتحه باشه تبدیل به الف میشه در اصل این گوده اکلو اسم تفصیله تبدیل به آ شده اینو دیگه توی محموزات خونیم خب میگه زمانی که حرف اسمی الف منقلبه از حمزه باشه الف منقلبه اشی یا الف زائده ای باشه مانند فاضل اسم فاعل دیگه یعنی زائده دیگه یا مجهول الاصل باشه این الف اصلش مجهول باشه یعنی ما نتونیم که این اصلش الف چی بوده مم. مم. در این حالت ها زمانی که تصغیریش میکنیم الف تبدیل به واو میشه در تصغیق متواجد شدی سر ورا من آكل تصغیرش میشه اوای کلو اوای کلو آمنه میشه اوای منو آمره هم میشه اوای منو نیست نه نه این همزه اصلش همزه بوده در هر نه اگر اصلش چیزی دیگه بوده اگر اصلش مثلا باب اصلش واو بوده میشه بوید ولی در آکله این الف اصلش همزه اصلش بوده اصلشی بوده در قائم میگه فازل تصفیریش میشه فویزل چون الف زایده زائده قائم میشه قوئم الف زایده زائده باک هم میشه بویکن چون الف مثلا داعن میشه دواعن داعن اسم تصفیریش میشه چی دوعين يعني دعوة جارك و تشك ساج سويج صابون سويبون فامون فوامون خلق دروا قاعدة دوي سده و دوي سيازه اذا كانت ثاني الاسم حرف اللة زمانك درومين حرف اسم حرف اللة باشي منقلبا عن حرف من احرف الالة منقلب شده باشي از حرف اسهروف اللة مثل غارون که در اصل بوده غور واق بوده این رد رده الى اصلیه اند تسخیر برگردانده می شود این حرف الله به اصلش هنگام تسخیر کردن مانند آبه یا ایبو این آبه این الف در اصل یا بوده حرف الله بوده پس در تسخیر به چش به اصل. با اصلش برمیگرده یا مثلا اصلا سه گروه همسله اول ملهمی القاعده در غیمه اصلش واب بوده میشه قویمه در موسر اصل واب یا بوده میشه مویثر به با اصلش برمیگرده مویسر. به با چیش برمیگرده؟ اصل. به اصلش اما قاعده دویست اذا کان ثانی الاسم الفا زمانی که دومین حرف اسم الیف باشه چه ان منقلبتا انهمزته؟ الفی که منقلب از حمزه باشه مانند سه مثال اول گروه دال آکلا آمنه آمره اینا در اصل اعکلو بوده اعمنو بوده اعمرو بوده ولی حمزه تبدیل به الف شده حمزه تبدیل به شده الف شده میگه زمانی که دومین حرف حرف اسم الفی باشه که منقلب از چه باشه از حمزه باشه یا زائده باشه، یا الف زایده باشه، مانند فازل، قائم، باک، که الف این سفت کلمه که زائد هست، جزء حروف اصلی نیست. او مجهولت الاصلی، یا اون الف مجهول الاصل باشه، مانند ساج. این ساج نه جمع مکسری داره، نه مصدری داره، چون اسم انده اینا. مثلا فام، اسم علمه مالیت شخصیه. خب این فام، جمع مکسر نداره مقدر که هم نداره اسم علم آ جامده و جان فیلی نداره چون اسم علم جامده مثل مثلا ابراهیم فیل داره مقدر داره نداره لذا مجهول الاصله میگه علیفی که از حمزه منقرض باشه یا علیفی که زائده باشه یا علیفی که مجهول اصل باشه در تسخیر قلبت واقعا تبدیل بواق میشه در تسخیر آکلا میشه اویکل فاضل میشه فویزل ساج میشه سویج و دیگه دیگی که در کتاب آورده پس اینا بودن قواعدی که مربوط به تسخیر بودن قسم اولش بود قسم دیگهی هم داره انشاءالله بیخونیم